زی من دیدم از اون به میلیاردی در سای متشاوره میکن میدونید چرا؟ گفتم که من ارزش. مشاولی که به من دادی بیزنان که من برنده شدم برای گرفتن این نمان دیگه عرضشت رو میدونم. شما میدونیم؟ برای چه که دار اینجور نشون 15 ملیون تو درم بعد صد دفعه تو زنگ زیب پول ما رو بده بعد وقت شیگاه رو ما خود داشتیم که که کار نکنیم مونشی مقال با خوشب بعد 15 ملیون که بعدش شیش ملیون دادی پول دستت نکنیم یه معرضش ها نداره اصابت هم منفی شده. مخام بگم یعنی متاسفانه تو ایران نه تنها فرهنگ استفاده از مشاورمی و فقط استفاده میکنن رفتار درست خودمش بلد شما اینم میگی در نظر داشته بشه مشاوردایی هم هستن که میان مشاوره می‌گیرن بعد کارم به جایی نمی‌رسه فقط چند تا صفحه داری ازش نه یه چیزی حال مشاور این نیستش کار مشاور گفتم نقش راهنمای شما و طلاج شما یه تصور اشتباهی از مشاور نمیشه اگه مشاوری اومد، دستتون ولم مرسی. اگه یه مشاوری اومد بهتون بگه ببین من الان همین کارا رو واک می‌کنم. ببخشید، بعد پس اون تیم تو بشه؟ بعد در استخدام تو. یه واقعیه. مشاور با تو رو آگاه کنید که آقا من اینا رو بعداً تو باید بری انجام بدی. ما همیشه می‌دونیم اولی کار با کارفرماها چی می‌گیم؟ می‌گیم آقا کار شما مدیر عامل. اولاً ما مدیر عامل اولاتهم بعد. می‌دونید چه چه تصمیم گیری رو؟ میگیم آیا به فراین مشابهر اعتقاد داری یا فلانی رو قبول داری؟ برند سازمان رو قبول داری؟ برند من قبول داری؟ اگه قبول داری؟ یا علی؟ حالا، تو ادامه میگیم آقا من میگم ولی تو, تو، چون من اجوانت نمیگم، ببینیم من الان میگم آقای شیبانی رو آقای کازمی اومده داف طلب جزه شو. این فر مناسره البته سه ماهه یا دو ماهه برای تعیین باید ارزیابی عملکرد میکنه چون امکان دارید یه جااههایی نقش بازی کرده یه جایی رو سناسسای کرده مدرکش چی چی چی من نمیدونم. اصلا می تو سیستم آدم خوبیه تمام هم من نمیتونه با فرهندی تو و تیم تو مچ بشه برای هم بر سه ماه عذخواهی ک بره خب من میتونم این توصیه ن کنم شما میتونی نپذید تصمیم با کیه؟ شما مشاور شما میتونه توصیه به مشاور یعنی به توصیه وا من میتونم که این آدم به نفع شون. ولی اگه بگی نمیخوام مشاور آروی نه به شما و اینجا بندش بعدی میوفته اگه من ایشون رو نپذیرم اون وقت اگه موفق نشه تو من شما میگی اونجا خب خیلی وقتا اینجوری دیگه ما به مثلا کارفرمامون ایده رو میدیم ولی گوش به ایده ما نمیکنه کار خودش رو میکنه متوجه هستین برای همین خیلی مهمه که شما حرفش رو گوش کنی یعنی یکی از چیزاش غیر از اعتماد داشت گوش کنید ادم هم ن پذیررفی بگی فنانی من نمیپذم خدللا تو بگو با هم صحبت میکنین خوش دللی تو منطقه باشه ولی چون تودللاییل تو نگفتی تجربه۴ پیش تو نگفتی من که همینجوری رو هوا می چون بیزینس رو تو بهتر از من می من علم می تو تجربه شدهدید تو صنعق و بهتر می شناسی حالا در مجموع صحبت این بودش که حالا بین کنه در این بحث ها بید بیرون بچستید به این بحثه به انسانی خودمون جان به این چجوری میگیدید؟ قیمت بحثوی کلس در همون دانشوش دوبله سوبله عاشناکه باشم ما به خودی ها رحم نمی کنیم قریب باشید چرا ولی به خودی رحم نمی کنیم صدقتت نه, نه ببینید بس ببینید من میخواهم یه چیزی بگم. واقعیتش من یه نرمی رو برای شما بیان کردم واقعی، واقعیتش اونه که بستگی داره این اصلا لفظ مشاوره است حالا میدونید چرا صنعت شما پیچیدگی صنعت شما نوع صنعت شما خود شخص شما چقدر پویانیم چقدر سلسط روا داریم واقعی یک تو بعضی از مشاوره ها من با شما اکیم شم ما با هم یه تفاهمه می یه قیمتی که شما رازیم خدا رازی ما هم رازیم Yes. میام جلو، نبینم شما قبل از اینکه وارد مشاوره بشی، بیست کار رو نمیشناسی برای همون شرکتی که به افهم رو گفتم، ما یه ذره با هم رفتیم جلو، گفتم هاج ادامه کار به درد آقا، گفتم آموزهش بختم ما هم فکر نیستیم، تو خیلی حرف میزنی، دیوونه کردی منو رو اینچون نمیدونی، هی مثال میزنی، این مثال رو دستانات عصبی میکنه منو. مثلاللا چیزایی نیستش که به درد من بخوره خودت میتونی فکر من ام من, من میدونم ما باید این توی جلسات آموزشی مششاوری با هم هم فکر باشیم و تو یه محبث علمی رو با زبان من و تو با هم یکی بشه اگر یکی نشه اصلا ادامه پروژه موب است. یه جا بعد همین میگم بستگی داره بعد میار آموزش آموزش یه تعریف مشخصی داره یه مبلغ مشخصی داره بعد از اون که اینودادین او تاذنیری تو کار. توی کار که رفتم یه جایی میریم بعد یه دوباره احساس مومن دو یه سر آموزش بریم، اونجا هم باید آموزش بریم. ولی میگم این بحثگی به کار شما داره، هرچی کار ساده تر، و من و شما الاز فکری به هم نزدیل تر قیمت نوع مال داره. ولی هرچی پیچیده باشه، هرچی تونانی تر بشه و هرچی که در واقع هم فکر رو هم سو نباشیم چون زمان می‌بره خزینه چکار چیکار می‌کنه؟ خزینه رم. سرمایه رو میبره چکار میکنه بالا. این بستگی به اون چیز داره دیگه. به اون در واقع فهم. ما اتفاقاً خانم فرخزاد برای من یه صحبتاتی که در مورد اِن‌جی‌او من چون در واقع مسئول کلینیک مشاوره مدیریت هم هستم در جایی که مشغولم ما برای اِن‌جی‌اوها به تقاضای معاونت مشاوره رایگان یه جلسه برگزار کردیم. من بسیار مخالف بودم. و دستم خودم میبوسم و به خودم آفرین میگم چون به اونا گفتم که اوناق تر که مالی جلسه میذاریم اینا رو میکشونیم ازشون پروژه میاد تو سازمان گفتم حتما میاد من مثبتم حتما میاد ولی دانش و تجربه هم میگه نمیاد چیز رایگان ادامه دا بود همتونم شد یک دونه از این جوایی که اومدم مشابه گرفتم و خیلی هم بعض شمان این پروژه همکنترکن نییم چون فکر با همون یه جلسه که بهش مشاوره دادیم دیگه بقیه کاران خوش بلدی چون فرزم اینجوری هم الان شما اینه میگید میگید خود دفعه تازه این این کاش همه شون این رو بگرد همین بسه ما مشاوره میدیم کل زحمت فکر باقیه هم فکر میکنیم جلسه میزیم اصلا اینجوری هم. من دو هفته تا دو هفته پیش تمام 20 تا دوازده شب سر نیم بیدم وقتی میرم به خونه، تازه میخوام برم استرعت کنم شوام بخورم، این در این وضعیت خیلی کار سنگیله، اصلا کار راحتی نیست و شما فکر نکنید چقدر قیمتش گرمه به نظر من اصلا قیمت نداره میدونی چرا؟ چون شما قیمت دانش و تجربت رو بیدید سالها خواهد، 24 سال خواهد خوردن دکتر روستا، 50 سال خواهد خوردن رو بیدید میدونید چی میخوام بگم وقتی می تو میگیره برای یه جلسه یعنی پاقشو بگیده پدر بزرگی ایرانه حیلی کار سختیه آقا تو هر کنفرانسی که میاد یه بحث جذاب تکنیکی داره خیلی به روز نید یعنی به روز که میخوام میکنم خیلی نونیست ولی به هرمون جماعت نمیدونن چون من از قیافه هاش و بشه هاششون میفهمم دستشتن نخواند؟ موشی چونش؟ ببخشید شما اون روزایی که میخواابیددی و حال میکردی شیننیمه می کردی و اچیسی میخوردی و مهمونی می و گپ می اون داشت خاک میخورد کتاب میخن مطالعه می بیدار بیداخوابی میکشید تا صبح پاورپون آماده می کرد اونوز حالا داره چی کنه اون پوله داره کمکش میکن یعنی ما حسن اون طلا شده داره پول همطور که برای تقطتم شما بگیید چقدر می ارید شما بر می که شما چه کارایی <تصفيق> خودت کردی چه دانشی چه تجربهی و چه توامندی در خودت اجاد کردی ولی در کل بستگی داره اوکی؟ بریم دو تا مبحث آخر داریم اینا رو به همدلله بتونیم به سرانجام برسونیم بعد یک فیلم جذاب داریم که هرکی دلش خاص میتونه ببینه یه نفرم بمونه من هستم خب اون فیلم هم شما نبید یه کار بد براشون بکن شایی من نمی کنم در جهاز آخره خب مدیریت عمل کرد گفتیم چرخش هم دیدیم آها توی این چرخه نگاه کنید <تص> دوستان میگه فرایندی که توی اسلاید قبلی براتون کشتم این چهار تا مرحله توشه که بهتون گفتم شما هدف گذاری میکنید براش برنامه رزی میکنید بعد باید بتونید چیکار کنید؟ وقتی که حمایتش کنید به عنوان مودی چون میگن وقتی میخواهید که مدیریت عامل کردی یا ارزیابی عملکرد تو سازمان سازمانه تو اجازه بده حتما رئیس سازمان باید چیکار کنه حمایتت کنه چون مثلا من میگم اصلا من می برش برات شبونی بدم من درخواست کنم میگه خودت چیه خودش چی بلنده میگه تو منو به سالچیه بداروی رو بگی اصلا کی گفته شما میتونی به من بگی که من خوبم یا بدم کارم خوبه یا بده ها من که با من سیاره بر هم آقای کاظمی یه صدیهاش رو بلر می‌کنن، همه می‌شنن سر جاش می‌گه حمایت مدیر آمله می‌خواد مدیر آمله می‌گه بله، من برای اینکه شما رو تقامتر کنم و نیروهای خودم رو کشف استعداد کنم نیاز به این سیستم درم پس دوستان بپذرین، من مشابه بودم یا نه آقای سلطانی هم مدیر منم اینسان خبره این کار داره این سیستم و پیالیزم، شما هم مجبور توش قرار بگیرید هست. اجبار نیست چرا؟ چون فوایدش برای خودتونه فرقنگ سازی میکنم، محاسنشو برای شو میکنم کسی گید که قبول نکنه؟ چون اجبار هست چیکار میکنم؟ سیستم میتونه بره؟ عرضیبی هم برطر تو پایانه دور هست، تو اون تایمی که شما شما میگی سه ماهه برای سازمانت خوبه؟ من میگم اصولا سه ماهه یا شیش ماه هست زودترش جواب نمیگیم چون ببینید شما باید یه فرصتی هم به من بدید که من برم خودم رو چغ کنم توانم کنم یا اصلاح کنم یه رفتار اشتباهی دارم یه کموتهاییده رو دارم توی دانشم چهجوری؟ بعد یه فرصتی داشته باشم یه شببه که نمیتونم برم عالم بشم پس برنابراین در این به شما میگم سه ماه یا ش فرصت اون بازگری باشه و در تحلیل آخرش داره دقیقه همونده که حالا اگر تونستمتوانمشم و کارم رو با اثربشی بیشتری انجام در پاداش میگیرم. اگرم که نیاز به اقرامات اصلاحی در من و در سیستم ای کاری باشه چیکار چکار میکنم؟ انجام. پس اینکه این چهار تا مرحله در واقع در دل اون چرخه مدیریت نشسته عرضش یا بیادن که هم که در موردش صحبت کرده دقیقا یکی اون روش شخص رسمی هستش که برای فرد داره اتفاق رفته یعنی اون فرمایی که ما باید بریم چیکار کنیم؟ در بیاره، من رو چیا؟ اون فرمه که شاخصها و عرضیابی بندهای رو داره که حالا یا عمومی یا تخصصیه و من خودم خودم رو عرضیابی میکنم مدیر مستقمن بهترین شیوش اینه من مدیر مستقمن و بالدستی حالا سازمان من پیشرفته تره دانش مهوره زیر دست همسط و مشتری بیرونی هم دارم من رو چکارم کنه؟ عرضیابی میکنه فواهدش چیه؟ برکاتش رو ببینید من یه چایی بخورم شما دلتون نمیخواد؟ براس شما آنشوارتون نداشتم داشتم گفت میزدم به دکتر ندیدم سردر بشودم یعنی که الان میوفتم قند و خون و فشنم اون دو دکتر ما کلا دیگه ما تبیر نمیگیره ها؟ تبیر نمیشون داستانه که شما درم اما با خود شخص شما یک کله نه کله باید شما باستاد اجازه هست؟ کجا بریم؟ یه لحظه بریم باید سیگار بشینیم گل بشینیم شیرینی سیگار بشینیم باستاد بریم آخر جواب ما رو نهدی <تصفح> جواب ما دو چنر رو بریم یعنی گربش مالی چقدر اینکه چی؟ آقا من واسه یه مجموعه دانشوی این کلاس هم یه چیزی درستایی درخف میدنم یه درستایی درخف میدنم همه این خرف رو دزارم تخفیف نمیدم. کار ما ارزشمنده. می بهتون کار یاد بدم. این گیز بزرگید. دبین من ده. تو ارزم. من آه. اصلا اینو یه نمی یک نکته بدم. کار من ارزشمنده. تخفیف ده. ولی شما رو مشروف چه توی این که براتون انجام انجامیدم، اضافه می کنم بر حسب مورد پروژه شما. که قیمتمون با تحساب بده. در ما این نمیشه در فیلم. مثلا، یه کاری که به این شرفته که مشاوره هستم انجام دادم. دادم تو سری آموزش میدادم اومدم بهشون گفتم که آقاجان جان هم من تخفیف نخواستنم اصلا آدم های احلشانی هم سا من اون یه ترایه یه سر دوره برایشون کردم و خودم آموزش هم دادم و دوستانم یه کار مشاوره چندیز سال خودم خودمشون رابطه بلند مودد آدم های با شعور و فهمیده ایم هستم میید تو آموزش رو برشون چ طرریفم خیلی خب, خب این کارا رو اون که بهش آعرضه یابی برات میکنین همینجوری نمییم برات آموزش بگیم چی چرا؟ چون مییم خاص تو آموزش مییم خاص سیستم تو سازمان تو صنعت تو آرزه یابی کردیم بعدش براش براشطراح دوره کردیم آموزش رو دادیم گفتیم حالا اون, اون،, اون مشروف چی بود ؟ گفتیم آخه تا یک ماه دانش برای اجازه دارن؟ مساعدشون و بطخ دادشون مطلح بکنن و مشاوره ای چی بگیرن رایبان بگیرن برا حل اون مسئله خیلی هم مدیرون چون دستت بودیریتی بود واقعا کارم کار همشون نه ولی چند نفرشون کردن و هنوز هم میتونم بگم که مثلا خیلی وقتا واقعیتش باید. مثلا باید. مثلا من باید یه مشاوره نیم روز داشته باشم نیم روز یعنی چار سن ولی واقعا شده مثلا مث خسارفه صدق نگا. ولی میدونی چی؟ یه تعامل چی داریم؟ بلند مدت داریم. بچا کسی که شما به شما گفت آقای سلطان 50 50 این رابطه بود نیست شک کن. ببین من یه چیز می‌خوام کار کارشنا، کارشناسیت کنم. هیچ به حرفایی که می‌شنوی و پیشنهاداتی که می‌گی و دریافت می‌کنی سبب سردو بود. شما وقتی می‌رید یه دختری رو می‌پسندید یا پسری رو؟ شما میاری تو همون لحظه اول به شما که میاری با ما از داشت که بگه آره قبول میکنیم؟ ما یکی بیا تو خیابون بگی من عاشق شما شدم میارم خدا شفاید خوشحال نمیشم بلی خیلی کانوما دیده خانومای سنبالا جا افتاده تحصیل میکنم بعده با یه نظر تو ماشین تو پنجره ماشین اینطور دیت عاشق شد گفت تو دیوانی مشکل داری باید دا بپیش روابزش اینا هم چیزهایی که شما شک را میدونم شما شوقی کردید ها برای این همه نسبت به حرفایی که مشتریتون تو ببینید شما مشتریه مریف اگر اما کار آموزشی و پروژه های من به حرفای شما من خیلی مشتریه ما نمیپذیرم چون کار نیست که مشتری نیست شاپ نیست که همهاش بیشی دعوتی بکنم نه مشکارو که دعوت بکنم یا یکی مشابه نمیگه نمید. این کارم از این درسته این درسته ولی اگر رفتیم و برای چندره غاز خودم نفرو بختیم یه خودم تو چاخ شما هم تو. شما هم بیزینس منی ببینید برش این حرفه منی. شما تو حرفه خودتون باید مراقب باشین تو مذاکره چی شم اگه حرف دقی من کهتون زدن اگه کای رو وارد کردیم و اون چکت به بید یه قیمت چیپدار شکل و چی میره چیس اصل نیست ها نرمت داشته باشید برای همین ما به همکاران قیمت دیگر رو نشید اگر تو اومدی رفتی زیر کف بازار مشاهره دادی نه یه حالا تیفیت نداری، بعضش بعد نیست ولی یه واقعیت بودی دار. تو نرم همه رو به هم زدی و بعد گفتی ارزش کار من اقلی ارزه برای همین بهتون گفتن چون به خودم هم میگرد خیلی را میگرد، خب چون ما نداری، فلان ما اساسه نداریم یکم ببین عزیزم برو مزاکره کن پروژه را با محاسبه حق و زحمه من حساب کن الان همین کاری کرده محاسسه به من میگه من عاشق این ستا کارگاه هم میزن فقط تو به من با قیمت چند بگم بگم بگم کار من نیست داره به من عبتی نداره به من, من باشه میدونی چرا؟ چون باید باید, باید بگم بری تو بر هفتات سی حساب کنی یعنی هفتات خودت ببری سی هم بشه حق و زحمه من دیگه چون تو ه پس یه قیمتی باید بده که هم بتونه حق و زحمه منو را بده هم چی کار بکنه؟ سوی خوش بعد یک کار کنیش تنب بیاد به شما مگه که بیا یه سنین به دیلیست رو باید آقا چون دسته نیمی فهمی چی؟ آقا میگه به شما خود چه فکر میکردی؟ آقا یه نور می... بعد میدونید این کفا کی ترین میکنه برشو بازار مثل همین که به شما بودم گفتم پاییترین اگه یه جدی رفت گفت تو اومدم ببین فور پرفال. فقط اینا مسئله درسته؟ آه. پس تو کار خودیتون شما باید یه معیار کف داشته باشید و بعد بحث به توامندی و دانش و تجربه‌تون چکار کرد قیمت خودتون رو تعریف کنید. من خیلی وقتا ایزیران به من زنگ زد زن یه دوره دوره‌ای می‌خواست. گفتم اصلاً ببین نمی‌تونم. گفتم اوکی، یه استاد ارزشمند می‌خوام. کیفیتش بده. یه دهم ساعته. تو اگه منو می‌خواد من نمی‌تونم با قانون توبیا نراحت شدن هم نداره با ما هنوز دوست خود چاکره. بله. یک استاد دیگه. استاد ارزان تجربهش مهمه. ارزان تجربهش. دانش و تجربهش کمتری با قیمت نورتری میره. برای اونها هم کافی بود، حتما کافی بوده دیگه. چون با اون انجام دادن دیگه درسته. پس برنامه‌ریزی شما بعد بتونید خودتون رو در یه لول قرار بدید که وشایستگیتون زیر سوال نره. اونو خوش بخوریم و از اون دو ست پایین تر نرده خیلی خوب فهمانیتش هم دلید میگونید وقتی شما عمل کرد داشته باشید دوستان رو آموزشتون روی در واقع خروجی آدم ها جا شدنشون جذب نیروتون یعنی که از داخلی بگیرید تمام اونا چکار میکنه عرضیابی عملکرد اثر میذاره و برکاتش برای سازمان اینه که خیلی وقتا شما سازمان میدونه که آقا جا من این این همه آدم توامن دارم بچه هم دارن از من گنده تر میشن پس باید سازمانم توصیح بدم نه لزو من در به صورت که تعداد آدم زیاد بشه به صورت چی؟ در کیفی خودم رو توسعه بدم چون اگر که خودم توسعه ندم هم میبوسه شیبانه اینا از من جدا میشن چون دارم بزرگتر از خانواده میشن پس بنابراین برکاتی که عرضیوبی عملکر یا مدیریت عملکرد داره به خاطر حقوق و دست برای آموزش توسعه هست برای مدیریت استعداد برای انتخاله جا به جاییه و همچنین برای بزینس خودتون بهترین روش عرضش یا بیچی که براتون توضیح دادم کی باید عرضیوبی بکنه با چه هدفی با چه شخص هایی و چجور بهش اعتماد کنیم زمانی که شما اهداف اهداف سازمان رو؟ شاخص هاتون رو بر طبق اون سوالات عمومی تخصوصتون رو دروردین دوستان پرس اشنامه باید روایی و چی داشته میشه؟ نویه می داشته میشه برای همین میگه یه آدمی که سطح علمی تو زمینه آمار داره مثلا ما همیشه این کار تمام پرس اشنامه همون رو بیدیم آقای دکتا حرقی چیکار میکنه برامون روای در میاره چون این کاره است من بلد هستم ها اون دکترای آماردار و حرفه و مشاوره اون مثلا که آها باید پنج تا گزینی بذاری سه تا بذاری بعد فرق بشه بعد این سوالتو بعد یه سوال دیگه بپرسه این سوالت رابطه به سوالت این مجموعه نداره تغییرش بده چیکار میکنه پرسشنامه‌ی شما رو اعتبارش رو میبره سطحش بالا. پایش رو بالا روای پاییشو انجام میده بر هر قابل اعتماده خروجیش بعدم میره تو سیستم قرار میگیره که افراد وقتی پر میکنن خودش خروجی پاسخ رو میده بیرون وقتی سیستماتیکش میکنید نگاه بکنید میگه که میارهایی که داره یادتون هست یه جای بهتون مورتم میاراش رو براتون میگم میگه ببینید حتما باید این به این صورت باشه که این فروای انگیزه یعنی اون فرهنگ سازیه توان توضیح بدم که عملکرد شما رو اگر دارم ارزاوی میکن دنبال نقطه زرفه تو نیستم تو راه سرزنش کنم دنبال اینم تو توسعه بدم دنبال اینم که آموزش های هدف من تو رو بفرستم دنبال این هستم که تو در کار ارتقا پیدا کنیم و بعد این ارتقایی می تو تنوینی میگه اقتصادی باشه به هر کاری دوستان هر برنامه تو سازمان و توجیه اقتصادی داشته باشه همینطور که هر کاری که به شما پیشنهاد میکنم نه خواهی پیشنهاد میکنم و توجیه اقتصادی داشته باشه شما میگی ببینید تو اینجا رابطه برد برد وجود نداره نمیارزه درسته؟ بری از خطا باشه یعنی چی؟ همونطور که گده اصل حاله ای توی یک از تهوری های ادراک بود گفتیم که یه ویجدی فر رو میگیره به برقیه قسمت ها چیکارم کنه؟ تعمیل میده یعنی اینکه این عرضیابی نباید دو چار خطاهای ادراکی باشه یعنی اینکه که باید بتونن قضاوت های درست بکنه قضاوت به مفهوم عرضشیابی و رابطه به که که که باید این اطلاعات رو افراد با صداقت جمع بری کنن به واقعه برای اینکه رابطه من و شو ببینید بهترین نوع عرضشیابی تو سازمان ها اگر فرهندیش باشه اینه که وقتی که من خودم عرضو کردم و مدیر مستقیمم مدیر مستقیمم یک با من صحبت کنه دیگه چرا این رو داده خوب این رو داده بر این رو داده یک اون رو داده هفت من میگه من, من هف و هم صحبت کنیم چرا اینجا خیلی من بالا عرضا بی کردیم جایی یه موقع تعالوزات ما تضاداییم رو تو شما خیلی بیشتر من رو عرضا بی کردیم یادتونم باشه خیلی وقتی مدیرهای ما آقای کازمی اگه خیلی بالو پر بدم به من وقتی من تمام مهندشه ما دارم خیانت کردم به من نه اینکه انگیزه ایجاد کردن بایی ما مسیرهای اشتباع بچه چقد مسیرهای اشت... اشتباهی رو انتخاب نکن. خواهش می‌کنم اینکه هیچ کسی رو تو اون چارچوب خودش قرار بدی و به واقع ارزش ندی، نه بیشتر، نه بالاتر، نه پایین‌تر. انگیزه در ایجاد کنید برای اینکه رشد بکنه. ولی اگر بهش گفتی سر دین سر شاه مینده، باورش میشه و بعد چی می‌خوره؟ میگه حکی می‌خواد خراب کنی برش؟ باید. باید. باید. و باشه، باشه. تحت تاثیرت میشه. اگه یکی به خوشگلی، چقدر جه خودت میچوتی چی؟ خیلی تحت تاثیر قرار نگی. آخه ما آجر کاری عجب چی؟ چه پروژی؟ حالا خودت ببین چرا گفت دادی؟ پروژه اصلا درست ارزویی که شده صد متوسط ایندار دیگه او او شوهرت مشه، هم لازم نخرم اصلا. اینم که ذره çıkar ماله داره کاله پر میده به موضوع، واقعا چور نیست. برای همین میگم خودتونو بشناسین. چرا اگه خودتونو بشناسید کسی نمیتونه از این در وقت صحبت هایی که می کنه رو شما نفوز پیدا کنه چون حرفاش درست نیست به واقع نیست خوبه که ما انرژی مثبت مصفت بدیگم یه چیزی بهتون میگم بشار یه تجربه خود من دارم. من اصولا من که انرژی مصفت بدیگم من بگم از ها شما تعریف میکنم باید. یه کچیل قلاب میکنم یه کچیل ولی تجربه جدید یعنی تجربه جدید ند نتیجه جدید هم میگه این کار چون با فرهنگ ایران و با دانش و مردمی که داریم جنبه همون کچولی رو همون برای من به خودم تذکر دادم از این به بعد به اندازه اگر یه جایی هم نمیخوام حرف بزنم یعنی موج احساس مخدم کنم مرفب در سکوت کنم سکوت کنم یه بهترک کارش نگه سکوت کن همیگه نظرتون ما دنباله تعریفا همه چونست داریم نه تعریف, تعریف بکنید تعریف... تعریف به جا به موقع انگیزه بدید بهشون من هم که میگم شما جوونید یه مسیر طولانی دارید خودش انگیزه است ولی دروغ نگم که شما دانشمندیم اون نیستی در دروغ با من بگی؟ شما بگید مثلا فلان نه نیستم یعنی به خاطر این وقتی میگیم افراد رو دوچار مشکل میکنیم بعد خودم گله می‌کنیم چرا اینجوری کردن، چرا اینجوری رفتار کردن. خب. اینا براتون توضیح دادم، یه نگاهی بفرمایید این ارزیابی 360 درجهن بهش می‌گه. یه گوشه‌ای می‌تونید یادداشت بفرمایید که این پاورپوینت در واقع داره در رابطه با ارزیابی 360 درجه صحبت می‌کنه. بهترین حالتش هم که مدیر مستقیم فیدبک حضوری هم بده، شفاهی هم بده. یعنی بگه چرا اینجوری ارزیابی کرده. خیلی وقتا هم وقتی شما عرضیابی مدیرتون رو میبینین آقای مهندس من یه جوری خودم رو عرضیابی میکنم خودم خیلی زیادتر از حد لازم میدم فرض بگیم اگه عرضیابی شما رو نبینم نمیفهمم من تو حال بارها بارها شده تو سازمان ها آقای سنتانیم شما وید به من گفتیم مدیر من بسیار از من بازیه من مطبعه میدیم گفتیم بله گفتم باش برسو بک از برو اگر فرما ارزه شده فرما رو اجازه بگیم نگاه کن چون واقعیتش میجودی نیست این تصور منه ت... بعد جالبه بهتون میگم فیدوک بیمدادم بعدا مثلا شاید در یه هفته، دو هفته، یک ماه طرف اومده گفته مرسی من دوچار اشتباه شده بگم واقعا جدی بهتون میگم گفتم چرا چی شد؟ گفت وقتی با مدیرم صحبت کردم اشتباه کردم مثلا این تصوری که من داشتم اون ن ارسابی ما که دیدم تیه مثلا ارسابی که من فکر مثلا باید صد باشه پنجا ایمون هم نیست چل و یه چیزی من البته فرهنگ شفاف سازی باید داشته باشیم باید این زد. چون ای باید ببخشی وقتی که من دارم نقد می شما رو قانتم بکنم ولی نه ترسیام حالا الان دیگه کار منو میذاره زمین هندمونه منو بکنهش مثلا 70 تا 50 نه با شفاف سازی کنم دفاع کنم از ارزویی که کردم چون ارزویی چیه منطق بعد داشته میشه دیگه بعد از اون عمل کرده است چون صد یه کیسی برام پیش اومد 4 تا پیش حدوداً من خودم شخصان آدمی هم که هیچ وقت خودم راضی نیستم یعنی به خاطر اینکه بتونم پیشرفت کنم انگیزه داشته باشم پیشرفت کنم مدیر اون برگشت به من گفتش که من از عملکرد تو راضی نیستم منم هم بهشون جواب دادم که من خودم حق دارم از خودم ناراضی باشم ولی فکر میکنم توی کلیت سازمان شما باید از من راضی باشین چون اینجوری که خودمان میبینم خیلی دارم کار میکنم همین جوری باش تمامل کردی؟ آره همینو گفتم دقیقا بهش خب حرف خوب نزدید. حرفا خوب نزدیم اون حرفای ارتباطی که با هم زدیم نه علت چهار ماه پیش بود که اون نری. ولی خب. حالا بذم همین الان با همون کیسا حل با مدیر مدیرتون به شما که شما ناراضی. شما میگی خیلی متشکرم. من چون این برخشتو ندارم که تو بخایش کنم بگی چرا. چون چرایش برام اصلا سواله من هیچ درکی از این مسئله ندارم. سوال تنها فرض کی کارو گیرسه بازش گردش باز میشه. نه یه چیز دیگه است. این داره به مدیرش میگه باید. باید مم. از داشته من اگه مدیرش باشم چپ راست من یه ذره پررو هم هست تو این درست چا خودم مستدن. احساس بکنم که اصلا, <تصفيق> اصلا با پررو ها جدی بکنم من اصلا حیفون پررو میکشم نیست آدم پررو پدش بکنم پر تاقه نهوم دلیم اونجا پدش بکنم یا میدم بیدم گرفونه دارم قاتل و جنگ ببر سرشو ببور شما تو این تعامله بیرونی حالا چرا ببینید شما مدیرهای مختلف داری با بدقلیری های مختلف و افکار متفاوت شما اول سوال کن یه چیزی بهت بدم شما حرفش منطقه باشه خب اون که قاعدتا از نظر خودش منطقه نه نه نه بلید. حتی شد شما رو اتفاقا قانع بکنه شما خنون ندونسته داری میگی که تو اشتباه کردی <تصفيق> این این مزاکره بوردورد نیست این یه تعامل درست نیست. خروجیش خوب نیست بچه‌ها. خروجیش زمانی که من بعد سوال کنم بعد اون فیدبک میده. الان بازتون توی مخارت های بازخور وقتی به کسی فیدبک میدین، مدیران عزیز، وقتی به دیدین <تصفيق> فیدبک میدید، باید بزین طرف خودش دفاع کنه. بعد شما منطقهای خودتون رو بگیرید، مستندات خودتون رو بیرید. و یادت بتونید متقاعدش کنید. حالا یا شما بعد مدیرت متقاعد کنی که توانمندی و برداشت اون اشتباه بوده یا اون باید شما رو متقاعد کنه که خیلی وقت میدین آخه مشکل چیه؟ سر انتظاراته شما همون نمیدین مدیر از تو چه انتظاری داره اون انتظارش اینجاست تو انتظارشو اینجا دیدی برای همین همینم این صحبت تف... ترزاده پیش میاد درسته؟ صحبت او... کردم با شما قانه شد یعنی یه سری مثال برش دادم که علاوه واقعا قانه شده علاقه بر این, من... آله آله بر این, بر این من این کار رو انجام میدم. چارتو قاره دیگه هم دارم انجام میدم که در وظیفه من نیست ولی به رشد و سیستم کمک میکنه. خب وقتی توضیح دادی چی بهت گفت که احساس تعریف کننده؟ امم دیگه چیزی چیزی خواستی نه؟ تا چی فهمیده دانشو؟ خب از سپوتش فهمیدم دیگه که دیگه نخواست بحث و ادامه بده که نه. بگه اینجوری. نه سلام ده. میگم. اصوت من به رو بهش نشون بازخوردی به من؟ سپوت علمدار رضا نیست. حتی اوان ترمکاری هم چی میکنم سکوت میکنم ولی خب اینو رو توی حالایی میزنم واسه اش به موقعش من زمانی سمينم. که طرف زبان منو رو نفهمه سکوت میکنم من چوش؟ یه فرصت فکر کردن میدم ولی باز بهش بازخور میدم چون من آدم مدیر سرقش یا خودم هم تکنیخاشو هم فیدبت میدم با دلیل و منطق بودم متقاعددم نمیشیم مشکل خود شماون ارزابیات و ارزابی خوبی نمیدم داشتم نیرویی داشتم که هنوزم باهاش دوستم از مجموعه مرا. خیلی من همیشه دست م چون در روز ارزیش میکنم. دنبال این بودم ارتقا پیدا کنمه دنبال این نبودم بودم خدای نکرده حقوقش همیشه مثلا ارزیابیش تاثیر بذاره رو روند کلی مدیرت ارش سازماننده دنبال این نبودم. قلی دومبلی بودم که درس رو تکرش کنم چون اگه دیوغه می‌کردم تو اونجوری اینجوری که بقیه هم می‌گفتن اون هیچ وقت دومبلی روش تا خودش نبود و بهش توضیح هم می‌دادم اصلا جوری خودش هم می‌گفتم می‌خوای حمره می‌زنم قالی این کار ناشورستی دارم تو گروه بگم نمی‌خوای که من بگم نمی‌خوای که من تو رو غیر علمی می‌خوای با هم زد و بند کنی یا تو اهلش نمی‌منی چجوری بریم با قاعده بریم تو این؟ اینجوری تو این؟ چون من تمام افرادی که توی همون همسط خودمون دارن کار میکنن و آنالیست گردم نه و من, من, شدم من اصلا کاری ندارم بر خودت فکر کن ولی میگم لزومت سکوت اون آدم دلیل بر رضایتش نیست توصیه میکنم که ازشون فیدبک بکنید یعنی با مدیرانتون پس در این بیایم که مثلا مثلا خوستاد من ازتون خواهش میکنم همه نقاط ضعف دارم همه نقاط قوت دارم پیش از اینکه نقاط و قوت من رو بگید نقاط و رو برای پیشرفت من بگید درست البته باز هم ظرفیت مدیرتون رو بسنجیم این هم مهمه ها باید چه حرفی ممکنه بزنه که ما بفهمیم قانه شده قانه شده. خب ازش ب پرسید نه. یه دفعه دیگه که بحث رو تونستی به اینجا بگو ب مونده بست که ما با همس من بالابلخر نفهمدم شما حرف منو پذیر یا نه میخوام ببینم عرضه عمل کرد نداری دیگه اینو که متوجه شدم و صحبت شدم. بگو مثلا اگه شما بقع از عدد سفت تا پنج به من نمره بدی به من چند نمره میدی در رضایت دست عمل کرده من. اگه گفت سه یگی متوس اگر چهار بررک نیست. نباید پنجم بد بده. چون مشخصاً تو دستت 5 نیستی اگه باشه که یعنی تموم شد بعد بذاری بری از اون مجموعه یعنی چی یعنی 5 بالاترین یا پایین‌تره یعنی هیچ وقت شما نبرنج آخر رو به زیر مجموعه بدی یعنی روها جلو پیش رفتش پس میگه تو اقل کل شدی دیگه به درد من نمی‌خوری برو دیگه امم هر یه جای پیشرفت عدد 5 مال خداست مثال بدارم بزنم مثلا عدد 20 هستی بذاری 30 یعنی 20 مال خداست دقیقاً همینطوری دیگه البته البته, البته. اینی که دارم بهتون تو میگنم تو ارزیابی ها شما تو ارزیابی عملکرد خیلی نباید اون پنج رو نهایت بزاریم چون دور از ذهن آقای کازمی یعنی ما همه همون اینقدر خوبره ایم چون این خالجی من شما رو چیز کنم بدوزم ببرم برای شرکت های بینومنالی خود شما ها یو کردیم از بستشون اصلا بیل گست و به دنبال تو اگه پرنج باشی که نیست دیگه حتما ازش دوباره فیدبک بگیر میگیر که آقا جا این نگهداری کارکنان در نهایت دنبال چیه دوستان اصلاحیت قبلیش رو نگفتم میگیر که این نگهداری کارکنان با این شرایطه شما پرداخت های مناسب بهشون بدین مزایری براشون در نظر بگیرید پاداش بهشون بدین مباحث رفاهی براشون ایجاد بارین درسته؟ این بحثه برمایی بهتشتی میریم به خصوصا برای کارخونه هاستی که خیلی هم یا کسایی که شرانتی دارن که مثلا آتش نشونی یا چیزایی مال آتش نشونی باشه آره سنسور ها باشه و شرکت خیلی به مب... مباحث انسانی اهمیت می‌ده. از پوشش شما از روابط خانوادگیتون، هر ماه شما یه روانشناس میاد بچه‌ها میتونه نوبت بگیرن با صحبت با مشکلات خانوادگی شما. اینا میشه جز مباحثی رفاهی. و در نهایت داره میگه دوستان، سازمانی که بتونه آموزش دهنده باشه، یعنی توسعه دهنده باشه، شما رو توسعه بده. شما احساس کنه در این شرکت آقای کاظمی که داری کار میکن هم فردی هستی از نظر کاریت رشد میکنید این محیط یه محیط سالمه یه محیط در واقع امنه یه محیط اخلاقیه یه محیط یادگیرنده است اینها میتونه در واقع چی باشه باعث بشه که افراد شانسته یا افراد مناسب و مطلوبی که تو سازمان شما هستن بمونن پس توی نگهداری سازمان ما یه دوباره این هستیم که این سرمایه های انسانی رو برای رابطه بلند مدت باشون داشته باشیم در دراز مدت باشون همکاری کنیم یه زمانی هست که نه خیلی وقتا ما برنامه رو داریم بعد افراد از سازمان میرن بگیم چرا؟ به این دلائل و هم بتونه دلائل دیگری باشه پرداخت عادلانه ندیم در واقع برنامه هایی که برای شما توصیده احساس کنه که بزرگتر از سازمان شده احساس امنیت نکنه احساس کنه مزایایی که شما براش در نظر در یه شرکت دیگه بیشتره با توجه به توانمندی‌ها با حقوق بالاتری میتونه بره با مزایای بیشتری میتونه اونجا شروع بکنه چیکار می‌کنه سازمان رو ترک میکنه پس بنابر دنبال این باشیم که سرمایه‌گذاری بلند مدت کنیم ولی بپذریم که دوستان بعضی اوقات افراد شایسته با توجه به توان مالی شما تو سازمان خیلی وقت‌ها توان مالی و معنوی خیلی وقت‌ها از سازمان بره بعد اجازه بیدیم بچه همون پرواز کنند شما دوست همشه بچه هاتون با شما زهر می‌فن یه چیه به بعد می‌دید باید باید زندگی آنچه که ما در دیمون توسیم بیاموزی با دادیم حالا دیگه موقعشه یا خود تشکیل خواهیم یا مجردی زندگی کنیم ولی تو خود دیگه مسیر خود تو تعریف بکنیم بعد چی که ها کنیم اجازه بکنیم بچه ها پرواز یه هر سوالا رو؟ میگی دفتر رو توضیح بده. میدونم خوابه که من داره میگیم. وقت دارم حوابیش شما نخوابید. کدرها رو بزنید رسو. چا؟ کدرها. آخه نمیدونم که آنگو رو دفتر خوابی نه. آخه, آخه امکان داره که الان رو الان رو خیلی سکنه. بگید ببینم. نام باهده معنابه انسانی در سازمان شما که یکی نفر دفت شب واحد, واحد ما گفتیم که شما ن جلسی بودی واحد ها میتونن کارگزیی باشن اداری مالی باشن امور کارکنان باشن مدیریت منرا به انسانی باشن مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک من به انسانی باشن میتونونه مدیریت سرمادار انسانی باشن که از سال های۱ هزار مدیت سرما انسانی مشان ولی نه مدیت مرا انسانی بود به کار می ده نام این واحد توی سازمان شما چی خودت و این می تونون دوستانه لبسایی گوشی که خود مثلا شاید چند تا این نفرونو آها برای همین واحد خاصتون حوزه نداری بفرمایید آیسان چون خانم شما دفتر, دفتر منابع انسانی آموزش دفتر منابع انسانی و آموزش خب آقای کاظمین بفرمایید کدوم یکی از این فعالیت هایی که الان گفتیم یعنی برنامه‌ریزی نیروی انسانی در واقع جبران خدمت، آموزش و توسعه، نگهداری، متیریتش عمل کرد کدومی که از فعالیت های حوضه منابه انسان تو سازمان شما به همین سب و سیاقی که الان ما هم صحبت کردیم که علمی بود آیا یک کدومش یا چند آیا برقرار هست؟ تو حوزه منابه انسانی؟ حوزه حوضه منابه انسانی اسمش تو چیه؟ تو اداره شما؟ توی شکرش شما؟ اسمی نمده دارم ها شما بیزین اصلا هم مالی میتونه باشه دیگه نه نمیتونه چون اگه نداشته باشه نه. تو این تو مالی اینا کوچولویی که ما همه کاریم خودم خودمون مدیر عاملمون خودمون مالیمون حسابرسیمون هم مثلا اینکه پاره بخمیاد انجام میده استفاده خودمون انجام میدیم اینجوری کوچیک‌ها اکثر ما همینجوری هستیم کی هست؟ حالا یکی تاخ طرف بگه کدوم یکی از این فعالیت های کلیدی تو سازمانش رو به صورت همین علمی که ما صحبت کردیم داره انجام میشه اجرا میشه میگم راست رو شما دارید شما دارید یعنی شما شرح شوق دارید شرح وظایف دارید و شرط احراز دارید متشکرم باشد. دیگه آه. دیگه ما کلی این چند تا پراهی بود کاربوزینی من انجام میدهد به اضافه آموزش من چیز دیگه این ندیدم اونجا اینکه بخوام بگم که مثلا برای به انسانش استراتیجی تاره اینو ندیدم چون الان خودم هم عذیب داشم از اینکه انگیزه لازم رو ب چه ها ندارم پس برنابرین بیشتر جنبه آموزش شماست که انجام میشه نیا سنجی uh, میشه uh, برنامه ریزییم میشه اهداف آموزشی در میاد و به همدللا به اجرا میرسه حالا یا توی درون سازمان یا خارج از سازمان زی بیا عملکردم خیلی مهمه بعد مدرسن... گفتی, گفتیمگویم دو تا فراینده بود مهمترنی تو حوزه منو بنسانی مدیریت... علما میگن تو بحث مدیت مناب بسانی دو تا فراینده تو خیلی معچی بگیرید بگیم بله مدیریت عمل کرد بود و و و و مدیریت عمل کرد بود و, و که همش در موردش صحبت کردیم مستقید. بله کارگاه بذاریم مدید. سرمایه های انسانی چجین میان توسو از ما؟ مدید. استخدام مستقید. استخدام مستقید. بختم دو تا فعالیت اینو تا آخر شب پیش تکرار کنید. خانمتون رو از دو دیونه شدین؟ بله. مدیریت، تمایز و استفاده. مدیریت، تمایز و استفاده. اینی از ذهنتو پاک نکنید. توی حوزه منابع انسانی دو تا فرایند بسیار مهمه. استخدام و مدیریت عملکرد. <تصفيق> یادتون نوبت بره ها. جمعه زن میزنم هفته دیگه. می‌کشنم. ازتون می‌پرسم. دوام نیست، استاد. <تصفيق> 난 جو. 난 جو می فهمیدارتون هست. یعنی می‌ذار از این ببنید ببنید. بس تو تو موزی مایه توواز معنی سازی چی بود؟ خب به من بفرمایید. حالا خواهش می‌کنم یه فکر کنید، شرکت کنید، مشارکت کنید. من همش حرف میزنم فیلی خوب نیست. بفرمایید که تو سازمان های شما اگر فرد شایسته وجود داره، یا خودتون هستید، چه جوری برای حفظ شما سازمانتون تلاش می‌کنه که ارزش داره؟ فقط حقوق افضایش و حقوق یعنی فکر مشکل من شایست پوله استاد مثلا سازمان ما بیمه تکبیلی اومده باشته رضایت رابطه مستقب با پول نداره با, با پرداخت نداره شاید برای عموزش بهش بدیم امین حسن، نه شاید نه من بخوام واقعی شو بدونی شما, شما, شما این ای نظرتون گفتی باید مادی و معنوی دوستان کنم کنم حالا معنوی باید برای اون سازمان و آدم های توامنش معنوی برای من محیطم تعامل با توامنتر از خودم و جای توسعه یعنی این محیط فرهم باشه برای که من یاد بگیرم این برای من از پول مهمتر حتی چون پولن می توانم جایی کسب کنم این پوله در درجه اول برای نیازهای سخه اول مازلوی هست ولی واقعیتش این که اون روست دهنگه خیلی برای من موحیم من محیطم دانشگره برای محیط های شما شد چیزهای دیگه باشه الان چیه؟ الان چه چی اتفاق دارم اون رو بریم باستاد ما همین تا یک دو سال پیش به هرکی بودیم الان دفته کار میکردی ها دارت خودمون بودیم ما دوشتم هایی که میبینم کشه همون ثابت میدنیم و باعث میشد که یه حقوق ثابت رو باعث میشد که یالا اگه این ها هم کار نرخونه باید اون رو میگیره و بعد چند وقت هم که یاد نیاز به آموزش داشت آموزش ایچه اجگاری باشد میرفته میگون ولی هزان این بحث پرسانی که گذاشته میگونه هلی انگیز ایجاد چهرده یک دمه درسته چون ها میگونیم البته بهترین پیشنهاد برای پرداخت, حقوق... پرداخت حقوق توی سازمان های ایر مثل حقوق ثابت نرمه مثل همون توابنیمشو کف رو <سؤال> بگیرید مثلا. هفصد تومنه مثل شرکت پخش داروی اونو همیشه این کف رو دارن ولی کفش 700 تومنه ولی افراد تا 3 میلیون 5 میلیون 10 میلیون کارت خره. بخیالش بس کردن به چی؟ دستان. به درغه اون انگیزه های شما که شما هر بیشتر در بفروشی پورسانتت هم میگیری. ها؟ 700 تومن گذاشتم جز نرم. حالا شاید واقعا یه ماهی شما مریض بودی، درگیر بودی، اتفاقی بعد نتونی خوب بفروشی دیگه. میان کفره حداقل از دست طرف درغه از دست نره. جانم؟ اصلا شده تو دو ماه طرف میچیدنای بوده ولی تو فروش سطح به این بوده. موشه چوج. مثلا سه ماه کارش هم داره بوده دیگه نیازی اساس چهار ماه کار نکنه باز پول داره که بخوره. لنگ نباشه، مریض نباشه. ولی تو اون نگهداریشون اون یه نگهداری داره دیگه. همین حالا حرفی که خودت زدی. وقتی این پورسانت 700 میلیون رو گرفتم، البته نیاز من تو سطح مزلویی مثلا ماه 10 میلیون باشه، 10 ما نه اصلا از که فاقا اگر اونی که شما میگی باشه خوبه ولی اگر این باشه که مثلا من حالا فرد نمیدارم دیگه حالا سه ما دیگه داره علاقه کنم این خوب نیست باید همیشه نظام های پرداختی شما دوستان یه یه جوری باشه حالا مثلا میگن یه نرمش پل بگیه جوری شما شاخصاتون رو در نظر بگید و پرداختی که این انگیزه به صورت مستمر در آدم رو قرار بگیره ها؟ همیشه شما انگیزه داشته باشید درسته؟ خب، دیگه چکار میکنیم بنام که کارگرهای خوب و خوب روشی، حرفه ای تو هپس کنی؟ آقای ربی؟ انگیزهش، پادهاش انگیزه؟ چجوره انگیزه میدیم؟ بیفراتی دو شکیش مثلا بهش میگم یه این کاری که داری میکنی یه هنره چیزی که تعلیف از تقریبا کام مردم اتداره شیری میکنه حالا یه انگیزی درشون ایجاد میکنه؟ حالا یه انگیزی درشون ایجاد میکنه؟ عجبادم درستان. او ساده یه عمره به من بزاری من همیزی در ایجاد ماشه یه من ایجاد بلنجا، یه جایی کشور احتمال، اگر میگه انگیزه ایجاد شد و اگر درست قضاوت کرده باشه نشون که کارگراش آدم های ساده اینگه ایشون با هم کلام شیبا و ساده میتونه چه کارشون میکنه انگیزه درشون ایجاد کنه ولی هرچی که ما با آدم های خوشمند و شما توانمند طرف باشیم انگیزه ایجاد کردن درشون سخت کارده مثلا شما بیرم به من بکنه مشاوره یک هنره میگم <تصفح> برو پیبیم <تصفح> میدونم دونم <بس چیم> آره آره هنر <تصفح> <تصفح> مشاوره بیش از این هنر باشه دانش و, دانش و تجربه است مدیریت مدیریت بله بحث مدیریت یه بخشش هنره ولی بحث مشاوره بیشتر دانش و تجربه است کار ما بخش اومده ایش هنره اگر که شیریناته که نیواری بالاخره ما می‌بینیم. اگه شب شمعایلش ما دیشب دی جاتون خالی مهمونی یه مهمونی که یه دوست اروپایی بیارم. دارم که از یه دوست اروپایی دارم که مهمونش بودیم همشه شبای تولد حضرت مسیح نورمیشون کاتولیکن نورمشون اینه که اون شواب از دوستان هستن. اولی جان یه مال فامیل و بسبان و همخوناست. برای همین جاتون خالی اونم هم بیشتر همیشه شامم هم تدارک دیده بود. یه ظرف کست سالاد روسی خوهرشون چون اومده و اصلا فارسی نمیفهمه، انگلیسی هم نمیفهمه چیزه درست کرد در غیر قضاهای دیگه که بغلب هم این و اینا بود بعد این جا. جای همه تو خاری بعد افاقی شکلش همش کنه با اگر خدایا یه چیزی دور این ظرفه گذاشتن مثل کباب فکر موکنید چه شکلی بود کبابه؟ قلب <تصفيق> ای من من این نه تلفن این جاز اینو میگه هنر فکر کردم که یا سیبا میگه بگه اینو جوری دوست کو با قالی با شیرینی یعنی تما چیزی که من تو کل زندگی می... من اصلا من هنرد آشپزی نداش از این ایدوها من هیچ وقت خودم در نمی کردم این اصلا به ذهنم نمی رسید حتت اینو بگیه آشپزان مشابه به دن که کبابات میت میشكله غلط دریره و در از این در و... واقع نشوند این فرد نه ترها با حوشه چون میخواست به ما بگیم من با عشق این قضاها رو برای شما که دوست دامه میدرست کردم و همه همه اون شکل قلب داشته بود تابعی بود دید. دید. دید. دا باید. دا باید. این چجوری درست می دیگه درسته. توی فرم میذارم دیگه آه، آه، آه، آه. درسته ولی خیلی جا. هر تو سدیش خوده این قالبات چجوری درست؟ می... خوده با دستش چجوری اینا میذاری؟ یه دفعه خداو با فکر می‌کردم. من گفتی میشی میگی بالاخره این قالبارو چجوری درآوردی؟ گفتش که آره با قالبای این کار کرد ولی حالم که به ذهنش رسیده بود غیر از اون غذاهای متنوع خوشمزه ای این کار کرده بود، اینو واقعا بهش می‌گفتیم هنر. دوستان پیام آخر ماه که بقیه زندگی برای اسلاده تبقیر... ها درس بود بقیه زندگیتون رو به بهترین قسمت زندگیتون تبدیل تکیل میکن. یعنی اینکه ما از اینجا از هم خداافظی می کنیمیم خدا میدونه ایدار ما در قیامت باشه یا به نخرین یه جایی این دنیا دوباره به هم برخورد کنیم اگر هم دیگه ندیدیم انشاالله هر جایی که چه اون دنیا چه این دنیا چه دنیای دیگه همیت آره. واقعا شبانی بقیه زندگیمونو و منم به شما بگم دوستان همین زنم به بهترین قسمت زندگی چی کار کردم تبدیل کردم استفاده کردم این مبحث مغازج های شونوت بازخور و این ممکن اضافه میخواستم مشکوفتون کنم که تستش هم دادم چون وقت نداریم سه تا پاورپوینت یا چهار تا بگو که براتون مفرستم. چه شب تو کار با هم نیاد. شما رو آره ولی یادآوری کنید. من بخاطر اینکه خیلی مشغله دارم شاید از ذهنم بره. یعنی چون برای خودم الان تو ذهنم قفل کردم که تمام اطلاعاتی که باید به شما می‌دادم رو ارسال کردم. چیزی فقط بگید که شبو یادت نره. سه تا ممی اس بزنید براتون. چهار تا جواب اس ام ایمیل بدید ایمیل, ایمیل. بیدی. آره ایمیل هم نگاه نمی کنم خیلی سرمشون وقت دوستان تلفن ها لفن خیلی فروت جواب نمی دهم برام یه میره شب دوباره باز یادم میره پاکی میکنم ولی ایمیل موزه ایمیل رو حفظ میکنم بعد میبینمش ایمیل بهم بدید براتون بفرستم خب بریم سراخت فیلم هرکی میخواد بره خدافزی کنه موید باید همچنین ما بیشتر ما بیشتر بیشتر ایشالته باغبق باشین. خیلی خوب به سلامت. سلام. باش. ایشان قرار میگید دانشگر هستیم یعنی؟ يعني... شما میگید ما دانش ما دانشگر یعنی اینکه در واقع افرادی هستم که هم آموزش میدن هم مشاوره میدن هم پجویش میکنن. یعنی بیشتر نگاه علمی دارم به مسائل. ما همیشه افراد دانش، افرادی که دانشگاهی هستن تدریس میکنن و مشاوره در حوزه آموزش خودش رو میگن یعنی آدم های دانشگری هستن اگر مثلا یه مهندسی باشه که در اون حرفه خودش هم داره آموزش میده یکی از بخش از دواقه شخصیتش دانشگر از سی توی فتور چند آئیکون مشاوره پجوش پجوش اینا اصلا با هم در کنار همه برای دانشگر ها اگر کسی یه قسمتش رو بگیره تون تو اون دوتا قسمت ضعف داره مثل استادای استادهای دانشگر ها تئورسیان تو ادبیات ترکی و نظری رو متفهم می‌کنه. البته استاد یه کسی که بخواد تئورسیان بشه، اصولا باید عملی هم کار کرده باشه بعد اونا رو بیاره در قالب تئوری مطرح ایران کنه. آخه اونا تئورسیان کی نیستن؟ ببین استادای دانشگاه تئوری‌ها رو آموزش می‌دن. خوشون که تئورسیه. ما که تو ایران تئورسیان مدیریت نقد نیست. چرا؟ ما ما ندریم اسمش کوچا ثبت شده. مگه واسه ثبت شده همین عشان. دشتر روستای گفتین روستان. خودش ممکنه یک سری تیز بده یک نه نه, نه،, نه. تیوریس هم توری یعنی بگیم تیوری تیلوف تیوری شعبانی تیوری شیبانی ندارین اینا های ثبت شده است یعنی باعث که طجو ها اصلا یه مطالاتی انجام شده ثبت شده اینجوری میشه که ثبت بشه توی به اسم اون دیگه اینا یه جای خاصی دارن مثلا شما یه مثلا یکی از استادای خانم فهمنگ ابراهیمی من یه دوری باهاش زبان میخونم چون یه روش جدیدی توی زبان انگلیسی رو توی استرالیا ثبت کرده بستگی داره دیگه من داری توی امریکا هم هست تو بحثات چون همه اونا اونجا هم ثبت شدن چی؟ نده اون زبانه انگلیسیه باز که یه چیزی همینجوری گفتی شیبانی از <تصفح> نه، ببین با هم علمی صحبت کنم من یه صحب آقای دارم تا این فیلم آزاد چیم آقای دبیش شیینه شی... شی... که می خوریم عظم خوابارو دیگرمون کم می کنید یعنی شیین؟ این وقت دید خوابارو دیگرم نه ن ما خواهد تو چیخ نه نه نه نه یه لقش این آقا همینه آقای چیخ نمیزن شما اینجوری بشه اما تو من هم از این چیخ چه اتفاقه بیوخده؟ ای آقا داره؟ جا؟ من بعضی موقع رو آرنده ای که بکنم خب هم بگیره یا اگر یا شکلات و هم بشه بکنم الان میدن چیزا ترخ خوبه شکلات تحصیم داره شکلات کلان هم سرزندگی میارن می می داستان انرژی میده حالا یک کافین داشته باشه و هر صوره چه دوستان حتبالاس هیچی دیگه از دست دادید همین بله همی بله شما نختی نمیان پاورپونت ها رو ما محبت میکنیم به شما بگیم ولی فیلم برای اون شایسته هایی که میمونن و میان یه چیزی باید بدی تو یه چیزی بگیری نیمدی نمیگیری درسته یا نه؟ بده ببینی اینا همش آموزش ها باید به بچه هاتونم اینا رو آموزش بدید من چرا میخندین؟ آخه من نمیفهمم من یعنی اشتباه میکنم من اصلا اصلا. یعنی من اشتباه میکنم مهندس؟ باده. بله بله آزای رویی خیلی خوب نه نه تا رو خدا جان مادرت دشون می دوستان نگر دوستان این فیلم در که با ارزیابی عملکرد کرد مدیرانه فکر کردم که حتما یه گفته بودم یه فیلم دیگه ولی دیدم اون با چون یه فیلم در حوزه رفتار دیدیم بهتره که این رو در حوزه مندرستانی در ببینیم خب یعنی کامل می چی بزنم اونو بزنم پول اسکرین پوش پولش دکمه بزنید روی هم تصویر دکمه انتر رو بزنید هره انتر بزنید بد شد که بد به خب دوباره پلهی کنید درست چکه پلهی کنید تو چیه ای نمیگه ترفیل نه خب این دوباره همین جمعو خینگر صدا شکریت